از چگونگی زندگی استاد کسی خبر نداشت او هرگز کار نکرد و اندیشه فردا نداشت وقتی غذا میخورد که شاگردانش از او می‌خواستند میزشان را مفتخر کند آنها قاعدتا از همنشینی با او لذت می‌بردند، چرا که ظاهراً از لحاظ فیزیولوژیکی اوضاع خوبی داشت آغوش خانه برای او خیلی گرم نبود چون که او به زن و بچه توجه نمیکرد و از دیدگاه زنتیب او یک الاف بی بود که بیشتر از نان برای خانوادهش بدنامی می آورد. به اندازه سغات به صحبت کردن علاقه داشت و به نظر میرسد که آنها دیالوگ‌هایی داشتند که افلاتون موفق به ثبتشان نشده. در هر صورت او هم سقرات را دوست داشت و نمی توانست شادمان مرگش را ببیند. حتی بعد از هفتاد سال. چرا شاگردانش اینقدر به او احترام میگذاشتند؟ شاید چون او هم یک فیلسوف و هم یک مرد بود. او با مخاطره فراوان جان السبایدیز را نجات داده بود و او می مثل یک جنتلمن بنوشد بدون ترس و بدون زیاد روی ولی بدون شک آنها در او میان روی در خرد را دوست داشتند. او ادعای داشتن خرد نمی کرد بلکه خود را عاشق جستجوی آن می دانست. او آماتور خرد بود نه هرفهیش فلسفه زمانی شروع می شود که یک نفر یاد بگیرد شک کند مخصوصاً به باورهای عمیقش، به تعصباتش، به پیشفرضهایش، کسی چه میداند که این باورها چگونه درون ما تبدیل به قطعیت میشوند و آیا یک آرزوی پنهان باعث خلق آنها نشده است؟ هوسی در لباس تفکری تا ذهن نچرخد و خودش را نکاود، فلسفی در کار نخواهد بود. سقراط گفت: "گناتی سیوتان، خودت را بشناس." به این ترتیب او به کاویدن روح انسان آشکار کردن پیشوررسها و زیر سؤال بردن قطعیت ادامه میداد اگر کسی خیلی با اطمینان درباره ادالت حرف می زد، او به آهستگی میپرسید که منظورش چیست؟ منظورت از این کلمات انتظایی که با آنها مسائل بزرگ مرگ و زندگی را حل می کنی چیست منظورت از افتخار فضیلت اخلاق ملیگرایی چیست؟ منظورت از خودت چیست؟ سخات عاشق پرداختن به چنین پرسش های روانشناسانه و اخلاقی بود آنهایی که این روش سغراتی این اصرار برای تعاریف دقیق تفکر روشن و موشکافی عذیتشان میکرد اعتراض میکردند که او بیشتر از آنکه جواب بدهد سؤال میپرسد و ذهن آدمها را بیش از پیش در ابهام رها کند. فردگرایی قابل توجهی کاراکتر ها را تضعیف کرده بود و بالاخره شهر را در معرض آسیب اسپارتاهای قویجوسه قرار داده بود در این وضعیت برای حکومت چه چیزی تر از این دموکراسی جمعیت محور پرحرارت این دولت جماعت مناظرهگر این ازل و نصب ناگهانی این ناانتخاب انتخاب کشاورزان و کسبه سادله به ترتیب حروف الفا به عنوان اعضای دیوان عالی مملکت یک سیستم طبیعی جدید اخلاق چگونه میتواند در آتن توسعه یابد و حکومت چگونه میتواند نجات پیدا کند پاسخ به این پرسش ها بود که برای سقراط مرگ و جاودانگی به همراه آورد تعجبی ندارد که کسی مثل السوایدیس به حکومتی که به توانمندی بیاعتماد است و برای عدد بیشتر از دانش ارزش قائل است پشت میکند تعجبی ندارد که جایی که اندیشه نباشد هرج و مرج می شود و جمعیت در شتاب و جهالت تصمیم می گیرد و در فراغت و استیصال پشیمان می شود آیا این خرافه محض نیست که خرد تنها در تعداد است برعکس آیا همه جا مشاهده نشده که آدمها در جمع نسبت به زمانی که تنها هستند اهمقتر و خشنتر و بیرهمترند آیا شرماور نیست که آدمها باید توسط سخنورانی رهبری شوند که مثل کتری برنجی تا کسی دست رویشان نگذارد زرزر می کنند؟ مدیریت مملکت قطعا امری است که هر میزان نخبگی برایش کم است و نبوغ بهترین از هان را میطلبد یک جامعه چگونه می میتواند بدون رهبری خردمندترین مردانش نجات یا قدرت یا بد؟ اکسل عمل حزب محبوب را در آتن به این معزه اریستوکراتیک تجسم کنید. در زمانی که جنگ خاموش کردن هر انتقادی را میطلبید و زمانی که یک اقلیت ثروتمند روشنفکر نقشه یک انقلاب را میکشیدند. احساسات آنیتوس رهبر دموکراتیک را که پسر شاگرد سقراط و دشمن خدایان پدرش شده بود و توی صورت او میخندید در نظر بگیرید. بعد انقلاب شد و مردان برایش و علیهش تا حد مرگ جنگیدند. وقتی که دموکراسی پیروز شد سرنوشت سغرات تعیین شده بود. او هرچقدر هم خودش سلطلب رهبر فکری حزب اسیانگر بود. او سرچشمه فلسفی اریستوکراتیک مورد نفرت بود. او مخرب جوانان بود و مست بحث. آنیتوس و ملیتوس گفتند که سقرات بهتر است بمیرد. بقیه داستان را همه می دانند. چرا که افلاتون آن را با نصرش زیباتر از شعر نگاشته است. و ما افتخار آن را داریم که خودمان بخوانیم آن معذرتخواهی یا دفاعیه ساده و جسورانه اگر نه افثانه ای را که در آن اولین شهید فلسفه لزوم و حقانیت اندیشه آزاد را ادعا کرد. از ارزشهایش در برابر حکومت دفاع کرد، و رد کرد طلب بخشش از جماعتی رو که همیشه تحقیرشان کرده بود آنها قدرتش رو داشتند که افش کنند او با قرور سر باز زد مهر تعییدی بر نظریاتش که وقتی قضات رازی به افش بودند جماعت خشمگین رأی به مرگش دادن مگر او خدایان را انکار نکرده بود نفرین بر کسی که با آدمها سریتر از آنچه چه میتوانند یاد بگیرند میآموزد سلام علی استفاوتی هستم با برنامه 14 ام پادکست 822 امروز دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 و من تازه نونمو که امروز پختم بریدم و دیدم که نسبت به قبل یکم بهتر شده. خمیرش خیلی بهتر بود قبل از اینکه وارد مرحله دومه اصطلاحا تخمیر یا پروفینگ بشم. مشکل اصلی هم اونجاست یعنی خیلی وقتا تا اونجا خیلی خوب پیش میره زمانی که خمیر قراره از ظرفی که توش هست و شب اونجا بوده در بیاد و چونه بشه یکی دو ساعت بمونه تا پروف بشه اونجا یه ذره گند میخوره یعنی کار خراب میشه اتا احساس میکنم بهتر شده وضعیت هندلینگ خمیرم یه ذره بهتر میتونم با خمیر رابطه برقرار کنم شما اگر نون پخته باشین میدونین که بعد باید, باید بتونین با خمیر رابطه برقر بکنیم اون اوائلش وقتی به خمیر دست میزنین خیلی احساس تو مرز ترس و چندشه یعنی یه جوری به دستتون می چسبه که نمیدونین باید چی کار بکنین یا وا میره یا خیسه یا خشک آرد ازش می ریزه یه چیز عجیب قریبیه 20 بار نوم پختن تا اینجا به من کمک کرد تازه بفهمم که این چه رفتاری ممکنه داشته باشه حتی شاید بنزی 5 درصد بهتر شده پری روز که خمیر درست کردم یک دفعه از 72 درصد آب رفتم روی 50 درصد یه تغییر خیلی رادیکال بود که میخواستم ببینم یه تفاوت فاهش در میزان آب چه سری داره؟ همین باید شد که خمیر بشه که عجیب قریبی خوش بود و من فکر نمیکرم که تبدیل به نون بشه ولی تعمل کردم آب بهش اضافه نکردم نتیجهش خیلی جالب شد یعنی ظاهر نون تقریبا همونی که باید باشه خیلی ظاهر جذابی پیدا کرد ولی داخلش خیلی فاصله داره با اون چیزی که باید باشه کاملا قابل خوردن بود ولی گاز کافی برای اینکه فاصله ی جادشه بین عدیزای خمیر و نون در حالت پختیه. یه پخت یکسان و متخلخلی داشته باشه این اتفاق هنوز نمیافته دیشب که خمیر می‌کردم از 50 درصد رفتم روی 60 درصد که تاثیر این ده درصد رو ببینم منطقی اشتباه که کردم دوباره مخمرم رو پروف کردم و حواسم نبود که 27 گرم آبی که مخمر توشه خودش یعنی 356 درصد برای خمیر 500 گرم آرد و به نظرم میاد که یک مقدار خیلی کمی این آب میتونست کمتر باشه که امروز صبح که میخواستم خمیر رو پروف کنم این میزان از چسبندگی رو نداشتم خمیر خیلی عالی پوف کرده بود یعنی سه برابر حجم, حجم دیشبش شده بود که بعد میشد تا اینجا فوقلاده بود خمیر رو در وقتی با خمیر بازی میکردم خمیر به کف سینی که محل کار, <تصفح> کار منه اه، چون اه، فعلا دسک چوبی مناسب برای این کار ندارم از یه سینی پلاستیکی استفاده میکنم که کفش رو آرد میمالم بهتر از دفعات قبل چونه شد یعنی وقتی که خمی رو تا می کردم روی خودش خیلی سری شکل می گرفت در نهایت ولی چسبندگیش زیاد بود چسبندگیش بیشتر از اون بود که آدم بتونه درستا بی هندلش کنه بعد گذاشتم و رفتم ماشین ها بگیرم به خاطر که ماشین و دیروز صبح بردم نمایندگی که سرویس 120,000 کیلومتر رو روش انجام بدن در حقیقه 130,000 کیلومتر و امروز هم رفتم گرفتمش تالاش شده وقتی ماشین رو میذاریم تعمیرگاه یه حس بد بیعتمادی بکنیم که بگیم عجب غلطی کردم خدا میدونه که اینا با ماشین عزیز من چیکار کار میکنن شاید قطعاتش رو عوض بکنن شاید یه یه چیزی رو علکی بگن عوض کردیم و عوض نکنن به حال این میزان از بیعتمادی در یه فرایندی که شما نمیدونیم درش چی اتفاق میفته خیلی زیاده از کار دکترها و عمل جراحی بگیر و کار مکانیکای که ماشینی تو باید بذاری و بری فردا بیای بگیری ای کاش میشد همونجا وایسی و جلو روت درست بکنم ولی خب سرویس 120 معمولا این کار نمیتونه اتفاق بگفته چون باید تسمه های مونم نم این رو عوض بکنم این طول میکشه در هر صورت چون من دفعه قبل یعنی سرویس 6000 همونجا برده بودم و ماشین دو سه سال بعد از اون داستان کار کرده بود امیدوار بودم که این دفعه این تجربه تکرار بشه یعنی یک اعتمادی از قبل وجود داشت و امروز که رفتم ماشینم رو گرفتم دیدم که داقی قطعاتی رو که تعویض کردن شامل یه تسمه تایم یه تسمه دیگه که نمیدونم چی بود و چهار تا شم و فیلتر هوا توش بود خدا رو شد که فیلتر روغن رو نذاشته بودن تو ماشین و اینم جالبه که این به آدم حس اعتماد میده یعنی هر چقدر قدم که منطق بگه این قطعات ممکنه از سطل آشقال اونجا گذاشته شده باشه ولی قاعدتا شما کسی که به خودش زحمت داده کارتون نوع قطعات جدید رو به همراه قطعات قدیمی بذاره تو ماشین این با آدم نایس و باشه بعیده که این دروقهیه به از فینک داره اینقدر پول میگیره واقعا آیا با این همه پول گرفتن؟ بازم ممکنه که سررادم کلا بذاره یه سرویس 20 هزار تا برام یک میلیون و 100 خورده ای آب خورد. در هر صورت شما نمیتونین ریس بکنید به خاطر اینکه به من گفت اگر اگر گفتم تصت هاییم چیه؟ و گرون گفت تصمت های خیلی چیز مهمیه همه کار ماشین رو انجام میده که باز من نفهمیدم یعنی چی. ولی گفت اگر در حالت روشن بودن ماشین تسم تایم پاره بشه موتور ممکنه بسوزه یا نیاز حداقل نیاز به عوض کردن سرسیلند همچین چیزی که خب اگر شما بیشتر از شهست هزار که ماشینتون رو با تسم تایم قدیمی سوار میشین میتونین از الان این نگرانی رو با خودتون همراه کنیم و هر صورت من برگشتم و خمیرم رو که بیشتر از یعنی از کافی پروف شده بود گذاشتم توی فر که 25 درجه فارنهایت با من نامهربانی میکنه و گرم نمیشه بیشتر از اون 450 در ساعت گذاشتمشون تو ولی خمیرم رو که از روی دستمالی که بود می‌خواستم بندازم توی قابلمه چسبی تش و با بدبختی اون ته این یعنی این اتفاقا نباید بیفته وقتی شما خمیر رو هندل می‌کنین توی این روش پخت همه قشنگی این داستان اینی که کل گاز داخل خمیر حفظ بشه و این رو مثل, مثل توپ آسیب ندیده منتقلش کنیم به ظرفی که باید بپزه که اون گازهایی که اون تو هست بمونه و موقع پختن به شما کمک بکنه که نونتون متخلخل بشه ولی فکر, فکر میکنم که اوضاع بد نیست یعنی 5 بار دیگه نون بپزم با دو سه درصد بالا پایین کردن میزان آب و یه مقدار جزئیات و دقت در هندلینگ چونه و پروفینگ فکر میکنم که اوضاع ممکنه بهتر بشه. امیدوارم متنی که براتون خوندم از فصل اول کتاب داستان فلسفه نوشته ویلدورانته که خودم دیشب ترجمهش کردم آدیو بوک این کتاب رو من سالهاست گوش می‌دم یعنی شاید 7 10 سالی که چندین بار یا به شکل کامل یا به شکل ف... چند... مثلا یه فصلش رو دوباره گوش کردم و واقعا سیر نمی‌شم یعنی هر چندگاهی یکی از فیلسوفایی رو که معرفی می‌کنه ویل گوش می‌دم و کسی هم که این آدیو بوک رو ضبط کرده اسمش یادم نیست فوق‌العاده صدا و حالتی که این کتاب رو می‌خونه یعنی آدم رو برای هر کدوم از اون فلاسفه میبره در دوران زندگی خودشون دلیلش هم این بود که چند روز پیش یعنی دو هفته دو مورد در این هفته که گذشت من اینوالوومنت با دموکراسی داشتم که من رو یاد این کتاب انداخت خیلی و گفتم که شاید این چند صفحه رو ترجمه کنم برای شما بخونم چند چند شب پیش یه نفر از روستامون زنگ زد و به خاطر اینکه از اسامی مستور استفاده کنیم بهش بگیم ملتوس فرض کن که ملتوس سنگ زد و از آنیتوس شکایت کرد که یک مقدار در یک لابی مخالفی داره حرکت میکنه و داره زیرا به اونو میزنه و قدرتش رو کم میکنه البته اینا برداشت من اون از موضوع قدرت این حرفا رو و حتی تحتید آمیز و خیلی دوست داشت که من با منی یک واسطه بپرسم که مشکل آنیتوس و ملتوس چیه؟ هرچقدر من خواستم از زیرش در برم که به من ربطی نداره خود باش مستقیم صحبت کن بالاخره اصرار کرد و تو رو درباییسی انداخت منی که زنگ بزنم و از آنیتوس بپرسم که مشکلش چیه من زنگی زدم به آنیتوس اون شب گوشیش رو جواب نداد فردا با هم صحبت کردیم و به من گفت که مشکل ملتوس فساد مالی دوزدی و عدم شفافیت مالی در امور اجرایشه که در هر صورت من گفتم اوکی ولی من که نمیتونم همین کلمات رو اینن با همین جمله بندی خدمتیشون تحویل دیدم گفت نه بگو. بگو مشکل نیست بگو من گفتم که مشکل من با تو دزدی و, <تص> و عدم شفافیت مالیه در سالی داره صحبت کردیم و اینا و کلی گله و شکایت و خاله‌بازی و اینا همه اینا در یک کانتکست روسای خیلی کوچیک و مثلا عدد و رقم چند میلیون تومنی میتونیم تص... تجسم کنیم ماجره رسید به اینجا که آنیتوس که مشکل عدم شفافیت مالی و دوزی با ملتوس داره در یک این اینوالف شده که این جناح در سال‌های گذشته از استخر روسا استفاده میکردن و توجهشون هم این بوده که این بابا مثلا صبح دوسته یعنی دوست آنیتوس صبح ساعت چهار پا می شده آبو باز می کرده تو استخر بعد ساعت هفت بسته یا کمک میکرده به آبگیری و نگهداری استخر رو اینجور صحبت ها در این حال دوست آنیتوس و پسر دوست آنیتوس که با آنیتوس دوسته و آنیتوس خیلی اونا رو به عنوان جناه مخالف ملتوس قبول داره ماهی پرورش میدادن دادن توی استخر روسا استخر نشنا... نشنال روسا استخری که به همین روسا تعلق داره بدون صحبت کردن با کسی بدون پرداخت عوارزی بدون هیچ چیزی همین که خودشون رو در یعنی این لطفو می که اون استخر آب داشته باشه به خوششون اجازه می که از این سخر بهره بردی چه جوری کنن ماهی بگیرن و به به هم ماهی میدادن و آنیتوس این ماهی ها رو و می خورد به کامل من من به آنیتوس گفتم که آیا این کار دزدی نیست ایشون خیلی شوکه شد از شنیدن حرف من و یه چند ثانیه سکوت کرد گفت نه آخه ماهی دیگه چیه اینا صبح ساعت 4 با می شدن و رو آب پر میکردن گفتم در صورت اینکه با اجازه صاحبان استخر که مردم روستا هستن که صورت نگرفته اینا برای منافع شخصی خودشون این کار کردند کردن و ماهیشون هم برداشت کردن و الان که این جناح با ملتوس سر این مسئله مشکل پیدا کرده یک سالی که استخر بدون آبه و تبدیل به یک یه چیز اون وسط شده که قبلا شما نگاه کردین، مثلا یه انقدر استخر بزرگه مثل دریاچه پشت صد بود یه یه چیز خیلی جالب بود، خیلی چشم اندازه زیبایی بود وقتی پر آبین سخت. الان خالی شده لجنایی کفش زده بیرون یه دو تا چاله آب داره و, و خیلی سح نذاشتی. گفتم پس به نظر میاد که اینا دلشون برای سخر و آب سخر و زیبایی روستا نمی, نمی سوخته حالا که نمیتونن به تنهایی از منافع پرورش مایش بهره کنن آبی هم درون اون سخر وجود نداره. و زمانی هم که این کارو میکردن از نظر من کاملا دزدی بوده و عدم شفافیت مالی چون به بقیه روستایی‌ها نمیگفتن که چند تا ماهی گرفتن چند تا ماهی فروختن چقدر سود داشته و دو ریالش به شاید به روستا و توسعه حتی اون استخ به خود اون استخ میتونسته کمک بکنه. خلاصه ایشون که نتونست از بحث من فرار بکنه اعتراف کرد که اینجوری ندیده بوده قضیه رو ولی خیلی فرق میکنه و من گفتم ولی خب تخمه مردوز میتونه دوز بشه دیگه شاید اینا اگر در مستر قدرت ملتوس که امروز هست قرار بگیرن به همون اندازه دوزی و فساد مالی داشته باشن امروز میتونن چهار تا ماهی بدوزدن فردا میتونن یه چیزی دیگر رو جا به جا بکنن دو تا زمین, زمین رو تغییر کار بدن کسی چه میدونه خلاصه این دوست ما آنیتوس بحث رو عوض کرد و کلن از سیاست اومد بیرون در که چه خبر هوا چه خوبه بارون میاد و اینا صحبت کردیم منم دیگه بیشتر از این استرار نکرم ولی هنوز, هنوز با ملتوس صحبت نکردم که بهش یعنی واقعا نمیدونم که چجوری باید این پیام رو دلیور بکنم که شما متهمید به فساد مالی دزدی و عدم شفافیت مالی و خودش هم دیگه زنی نزنه چون من که بهش زنی این میزان از انوالونت من با سیاست بود در سیاست روستا از این جالبتر این بود که چند روز قبلش یک, یک دوست خیلی یعنی یک آشنایی که ما فقط توی دو جلسه آشنا شده بودیم با هم در دوازده سال پیش با من تماس گرفت که این نشون میده سیاست من داره چقدر رو حفظ میکنن یعنی من اگر با کسی شیش ماه حرف نزدم گه احتمال نشماره تلفونشون ندارم تماس گرفت با من و گفتش که کاندیدای شورای شهر تهران شده و, و،, و جالبه که خیلی اصرار داشت که پیامک تایید صلاحیت رو گرفته انگار مثلا منم می دونم که گرفتن پیامک تایید صلاحیت چقدر مثل مثلا گرفتن رتبه یک توی کنکوره یه همچین چیزی خیلی خیلی مشعوف بود از این ماجرا گرفته و خیلی حامیان و سپورترهای بزرگی داره فاند داره و علاوه بر همه اینا دوست داره که تایید و حمایت منم داشته باشه که اولای خیلی خندیدم یعنی من واقعا خندم گرفت که یک کاندید شورای شهر تهران حس میکنه اگر تایید و حمایت من داشته باشه میتونه بوضوعی بهتری داشته باشه حتی, حتی نیم درصد و واقعا بهش گفتم که من <تصفيق> کلن تو این شهر شیش نفرم نمی شناسم که بتونم تحت تصدیر قرارشون بدم و بعیده که چهار نفر از این 6 نفر اصلا رعی بدن در شورای شهر و اگرم رعی بدن اون دو نفر حتی یه نفرشونم تحت تاثیر حرف من رای نمیده خلاصه ایشون به نظر میاد که مجاب شد یعنی فهمید که من <تصفيق> خیلی صادقانه و بدون تعارف دارم میگم که من اینفلوئنسی تو این شهر ندارم و خیلی خیلی با احترام و مؤدبانه سروتش رو جمع و برد همون ور که همین خود شما هم که اگر رای بدین کافیه که دیگه من بهش نگفتم من رأی میدم یا رأی نمیدم ولی به نظر میاد که یه مقدار دیپلماتیک تر از قبل دارم رفتار میکنم و نایستر بهش گفتم هر کمکی که از دستم بر بیاد براتون انجام میدم و اجازه گرفت که منو اد بکنه به چنتو گروه تلگرام اینا من نمیدونم که چرا یه نفر نیاز به داشتن بیشتر از یک کانال یا یک گروه درست به سه چهار تا کانال و گروه اینا ادم کرد و یکی دو روز من اینا رو مشاهده کردم باور کردنی نیست یعنی بجز یکی دو تا مطلب که معرفی ایشون بود و اینکه درجه فوق لیسانسشون رو از کجا گرفتن و چه مقاله‌ای در چه زمینه‌ای نوشتن یعنی از معرفی های ایشون که بگذاریم و اینکه همسر ایشون هم دکتر داره در چه زمینه ای از اینا که بگذاریم هیچ چیزی دیگه ای که راجع به این اگر ایشون انتخاب بشه در شورای شهر ایران ش... ش... شورای شهر ایران چه کار قراره بکنه برنامه شیه ویژنش چیه هی... هی... هیچ چیزی وجود نداشت و این اعضای این گروه ها خوز بیپایانی بی پایانی در حجم مثلا 100 تا در دقیقه دارن پست میکنن توی این گروه ها از همین چیزایی که تو شبکه های اجتماعی فوروارد میشه چیزای الهام بخش ویدیوها عکسای الهام بخش چیزایی که یک صورتی رو از اخلاق و اینکه چی بهتره چی بدتره یک کاندیدای خوب باید چه جوری باشه یه شهر خوب شهروند خوب چه جوریه هر کسی به سلیقه خودش این چرت و پرتارو فوروارد میکنه ولی دریغ از اینکه شما بفهمید ایشون در گذشته کار کرده مرتبه به جز اچیومنت های آکادمیکش در گذشته کار کرده مرتبط با این منصبی که اینجوری با این شدت و حرارت دنبال میکنه و اینکه اگر این منصب رو به دست بیاره چقدر کوشش و تلاش میکنه در چه جهتی با چه برنامه‌ای با چه ریسورسی با چه ویژنی هست هنمتر هیچ هیچی صفر همین باعث شد که من دوباره به فکر میدونم که پادکست در مورد دموکراسی قبلا یه چیزایی گفتم که الانم یادم نیست چی گفتم ولی گفتم که این داستان سقراط رو بازگو بکنم مطمئنم کتاب داستان فلسفه به فارسی ده ها سال پیش ترجمه شده حتما هست رد بیشتر از یه ترجمه چون کتاب خیلی خیلی معرفیه و خیلی قدیمی مطمماً من این کتاب فارسی نخوندم خوندن انگلیسیش مطمئناً خیلی لذت بخش داره به همه توصیه می‌کنم و این و بعضی از اسامی فیلسوفای یونانی هم سخت من نمیدونم ترجمهش به فارسی چیه مثلا آنیتوس و ملتوس یه چیز دیگه ممکنه به فارسی بشه که ساکرتیس میشه سقراط و پلیتو میشه افلاتون واقعا نمیدنم اینا چی جوری از کجا اومده ولی السبایدیز و آنیتوس و ملیتوس رو فعلا از من به همون ورژن اصلی داشته باشین چون وقت نشتم بگردم ببینم معادل فارسی چی میشه آره واقعا من دوستم بای خانوم سوال بکنم از این خانوم بپرسم که الان کاندید شورای شهر تهرانه و یه گفتگو دیروز با دوستم داشتیم که چون من دیروز یه، یک ساعت رایگان داشتم یک روز رایگان داشتم یک روز مکالمی رایگان هم رو اول داشتم و به این بهانه یک ساعتی با دوستان صحبت کردم و این مسئله رو مطرح کردم ایشون حامیه یک کاندیدای دیگه بود که به نظرش کنشگر اجتماعی هنیشون و این کنشگر اجتماعی به فعال سیاسی هم اون چیزهایی که من من هرگز به معنی شغل نمیفهمم یعنی دو تا شغلی که من درک نمی کنم یکی فعال سیاسی که گاهی این تلویزیون تلویزیونای بیگانه تماس میگیرن مثلا با یه فعال سیاسی در برلین یا پاریس مصاحبه می کن. من نمیفهمم این شغل یعنی یعنی این آدم چجوری می کنه؟ همون جوری ارتیزاب میکنه همونجوری که ده ها نفر هستن که شغل منو نمیفهمن و دائما از من میپرسن که آقا شما چه پول در میاری منم واقعا نمیفهم که یه فعال سیاسی چجوری پول در میاره و نون میخره و دیJ دیJ رو میفهمم چه رو پول در میاره ولی شغلشون نمیفهم به عنوان به عنوانی کار نمیفهم که دیJ چه ولیوییت میکنه به زندگی بشر جواب تکنیکی هم ازتون نمیخوام که بگی این آهنگار رو میکس میکنه ملت رو سرگرم میکنه شاد میکنه این, این چیزا رو میدونم ولی فراتر از این من... من یکی دیJ و یکی فعال سیاسی بالا تو همون کنش کنشگره مثلا ملی مذهببی اینا رو من نفهم خلاصه این دوست من معتقد بود که اه... این نامزد یا نامزد کاندیداتوری کاندیداتوری هم از اون کلمه جالبه این کاندیدا یه کنشگر سابقه داره در این زمینه و بهشون باید بدیم و من که این بحث و مطرح کردم که آیایشون برنامه گفاره این برنامه داره برنامهش بابلی شده است که ازش خواستم برام بفرسته و به نظر میاد که اوزا این یکی بهتر بود یعنی این یه هایی داشت ولی مبهم یعنی اجازه بدیم براتون پیدا بکنم البته الان که دوباره دارم میخونم میبینم که بهتره که تعصب به خرج ندم خودش تیترش شاید مبهم باشه مثلا شهروند مداری و مدیریت شهری مشارکتی و شفاف ولی زیرش یه اعتمایی هست که اینو از ابهام در میاره یعنی مشخصه که میخواد چیکار بکنه مثلا او، اول اول یعنی یک اول اولین بند از چپتر اول این هستش که ایجاد شفافیت مالی در شهرداری تهران از طریق نظارت عمومی و اصلاح قوانین پاسخگو تنها ایرادی که به این میشه گرفت واقعا اینه که بندش خیلی زیاده یعنی خیلی بزرگه یعنی سیچل بندی که این خانم دنبالش هست که ولی خب تمیش کم یعنی برنامه داره و و بعد سوالی که من از دوستم کردم گفتم خب حالا کسی که این همه برنامه داره و کنشگره واقعا چرا نیاز داره که بشه عضوی از شورای شهر تهران که چون قطعا اگرم بشه که این چلتا بند رو نمیتونه اجرایی بکنه به اضافه که وقتی میشه اسیری یه سیستم بروکراتی که در در چالش با چهار تا نظر مخالف قبر میگیره که خب خیلی سختتر میشه پیاده کردن برنامه هی که داره و تحقق ویژنش خب این خیلی بهتر میتونه به شکل مستقل کنشگری بکنه و چهار تا از این 40 بند رو با اولویت بندی کنه بکنه بدون این که در شورای شهر باشه من با ریاست جمهوری کینه دارم من با اون اسکیل از سیاست و دموکراسی کینه ندارم خیلی از کارهایی که رئیس جمهور میتونه بکنه رو یه کس دیگه این نمی‌تونه بکنه برای ما این شما اگر یه ویژنی برای کل مملکت و رابط خارج کشاورزی نفت اقتصاد آموزش بهداشت همینا با هم دیگه دارین به نظر میاد که برای رئیس جمهور بشین ولی اگر شما میخوان که یه ذره شفافیت تو یه گوشه شهر پیدا بشه یا یه فضاهای خاطره انگیزی از شهر حفظ بشه یا حرکت روان‌تر باشه تو شهر یا نفس کشیدن بهتر باشه تو شهر یا تو محلتون و قاعدتا به نظر نمیاد که عضویت در شورای شهر تهران یا هر شهری این یک نسسیتی یک الزام باشه هزار تا رای دیگه هم هست همون جوری که شما اگر میخواین یک مهندس بشین و یک چیزی بسازین نیازی نیست برین دانشگاه که در حقیقت این این منو میرسونه به بهانه اصلی که من اون چپتر رو از کتاب داستان فلسفی ویلدورانت درجمه کردم به این بود که زمانی که اولین بار من این رو گوش کردم و فهمیدم که در زمان سقرات که من واقعا خیلی خیلی تحسینش میکنم خیلی براش احترام بایلم بهش گفتم تو جوانا رو, جوانا رو تخریب میکنی و به این اتهام کشتنش خیلی برای من اقلان بخش بود و خیلی دوست داشتم که یه سمای ساکریتیس یه شبه سقرات بشم و این فانتزی خیلی بزرگی بود یعنی اگر یک روزی با حتی با توهم با یه, با یه, با یه تاروف علکی یه نفر به من میگفت که تو شبه سقراتی من فکر میکنم که این معنای زندگی من رو محققی به من داده بود و همین برای من کافی بود ان که چند روز پیش یه پدری ایمیل زد که ایمیلش هم رو وبلاگم منتشر و اونجا به من گفته که نظریات من برای جوانان ها مخربه همین برای من کافی بود یعنی هیچ چیز دیگه ای من هیچ جوابی هیچ دفاعی به نظرات ایشون ندارم به حال یه نظری دیگه شما خودتون میتونید بخونید و شما یه نظری داشته باشین نسبت به نظر ایشون. ولی این کامپلیمنتی که یعنی تعریف و تحصیلی که ایشون از من کرده که نظریات من اینقدر اهمیت داره که اینقدر تحصیل گذاری که باعث تخریب جوونو میشه در این حالی که یک سر سرسوزنی به این باور ندارم یعنی خودم دیپ داون میدونم که نظریاتم هیچ کسی نمیتونه تخریب بکنه ولی در این حال یک کامپلیمنت سطحی بود که یه چند روزیه که به من حال خوشی داد یعنی واقعا لذت بردم از این که حتی یک نفر بدونی که خودش بخواد یا بدونه یه شبه سقرات از من در توی یک ایمیل حتی به حتی اندازه تأثیر یه نفر من با این خوشحال شدم و اون داستان رو ترجمه کردم و رسیدیم ب... و این خیلی متقارن شد با اینوالد شدن من در دو دو داستان دموکراسی و تأثیر گذاری و لابیگری و اینا که که همه اینا خیلی خیلی جالب بود سوال اینه که واقعا اگر شما نری تو شورای شهر شما اگر توی کنکور قبول نشی شما اگر بری خواستگاری و جواب رد بهت بدن پلن بیت چیه واقعا چی کار بکنید چرا یه کاندیدای شورای شهر این رو جواب نمیده یا یه کاندیده ریاست جمهوری. شاید کتاب امکان به اسم بهترش سی کار به جای دانشگاه رفتن. اسم بهترش این بود که اگر دانشگاه قبول نشی یا اون رشته مورد علاقت قبول نشی چیکار می‌خوای بکنی؟ What's your plan B؟ کسی دیگه نمیتونست به این انتقاد بکنه که آقا تو داری جوان‌ها رو تخریب می‌کنی از زندگیشون باز میمونن چون من نمیگم آقا دانشگاه نریم. من what if اگر شما میخوایی رشته پزشکی دانشگاه تهران قبول بشی و در رشته پزشکی دانشگاه تهران قبول نشی برنامه چیه در راسته خدمت به بشر در حیطه پزشکی اگر به جاش حسابداری داریه چه میدونم دو قبول بشی این رو به عنوان پلند بی قبول میکنی اگر اصلا یه, یه آتوریتی یه نیروی بیرونی یه کسی که کنترل چیزی رو داره که تو نداری تو رو انتخاب نکنه در اون چیزی که دوست داری انتخابیت بکنه حالا این این میتونه دموکراسی باشه میتونه اکثریت آراش پلنت برای روان‌تر کردن حرکت در شهر چیه خانم کاندیدای شورای شهر تهران پلن دیینه که صبر بکنی دوباره برای پلن ای 4 سال صبر کنی و دوباره کاندید بشی پلن بی تکرار پلن ای یعنی اگر تو کنکور قبول نشی، میخوای یک سال دیگه صبر کنی و دوباره بخونی و دوباره کنکور بدی و اگر دوباره قبول نشدی دوباره یک سال دیگه صبر مثل بعضی از کاندیداها که مثلا 3 تا 4 سال دوازده سال از عمرشون رو صرف کردن که کاندید و توی این فاصله هیچ تلاشی برای موقوف کردن دو سانت از اون ایده هایی که حداقل شعورایی که داشتن نکردن همین همین نمایندگی که من امروز ماشینمو ازش گرفتم دو سه سال پیش که برای اولین بار برای سرویس 60 تا این ماشین رو بردم اونجا واقعا از, از سر ناچاری یعنی اینترنتی نتونستم از یه نمایندگی دیگه که میخواستم وقت بگیرم بعد جواب تلفنم هم درست ندادن شاکی شدم این تنها نمایندگی بود که وقت اینترنتی و تلفنی نمیخواست یعنی صبح ماشین تو بردارو بر اونجا بذار و خیلی هم ترانسپرنتی یعنی داخل مکانیکی منطقه نه مثل مثلا این مکانیک نمایندگی های تویوتا و ماشین های که از پشت شیشه میتونی بشین تو کافی شاب ببینید. درش باز یه دونه مکانیک یا یعنی این سر مکانیک اونجا داره که باش میتونی دوست شمار تلفن شروع بگیری باش صحبت بکنیم به نظر میاد که آدم معبولی کارشو بلده جوابتو درست میده و خیلی باکلاستو با پرسیش صحبت میکنه لباس تمیزی داره ای اینا همه دیده میشه کل نمایندگی کوچیک تر از جاهای دیگه از همه شیش این این شفافیت رو من دوست داشتم و بعد که ماشینم گرفتم که دو سال بدون اینکه کار کرد فهمیدم که خطا نکرده رو چشومم دوباره که بردم اونجا و امروز که گرفتم دیدم که این قطعات داغی داده و و فهمیدم که این داره در راستای افسایش شفافیت تلاش میکنه چرا شما که کاندیدای عضویت در شورای شهر هستین چرا تلاش نمی‌کنین که شفافیت خودتون رو ببریم بالا من بدونم که شما مثلا روزی تو چه جوری شب می‌کنین چه شما یه پادکست ندارید در مورد غذا خوردنت جزیات زندگی صحبت میکنید. به اینکه مثلا در سال گذشته واقعا چه کارا کردیم؟ چرا ما فقط بعد بدونیم که یه منتخبی از فعالیت شما یه ورژن پالیش شده و فوتوشاب شده از قیافه شما ببینیم چرا واقعا قیافه واقعیتون رو اکس نمیگیریم میاندازین در کنار همسرتون که دکترا داره در گرشته مرتبطی با بهتر کردن فضای شهری چرا؟, چرا من باید وقتی یک روز رایگان میگیرم همش نگران باشم که شاید همراه اول واقعا علیکی میگیم یک روز رایگانه و این شارج میکنه این فقط یه تشویقی برای اینکه که من دو سه ساعت اصافی صحبت بکنم چرا, چرا بیل به من نمیده هم رو اول بیل دیتیل دیتیل تماس رو برام بفرسته الان که ایمیل میفرسته که کاغت شاب نمیکنه هزینه ای نداره من میدونم هر روز چه ساعتی مکالمه داشتم تماس گرفتم چند دقیقه این طول کشیده و با چه ریتی محاسبه شده و اون روزی هم که رایگان بوده تماسام بیاد رایگان بودنش هم دیده بشه و من بتونم دونه دونه یا اصلا ببرم اینا رو تو اکسل شیت و حساب بکنم شاید بتونم یه الگویی در بیارم برای کاهش تماس‌های تلفنیم شاید بفهمم که مثلا ساعت‌های 7 غروب ایمپالس میزنم و زیاد صحبت میکنم مشکل تنهایی دارم تو اون ساعت بین 7 تا 9 غروب و توی اون ساعتای دیگه خودم سرگرم کنم تلفنمو خاموش بکنم ببین میگن شفافیت میگن افزایش شفافیت پس شد دو تا سوال یک اینکه پلن بیه شما چیه برای اینکه شما رو انتخاب نکنن اکثریت آرا کنکور نمیدونم مسابقه المپیاد آزمون استفاده کشوری ودر هر چیزی که درش شرکت میکنیم که شما خواستگاری خواستگاری از همه که ساده ترش پلانه انتخاب نشدن شما چیه؟ و سوال دیگه این که شما که این قیده شفافیت میکنین و نیاز به شفافیت دارین خودتون چقدر شفاف هستین؟ آیا همون میزان که خودتون شفاف هستین کافی نیست که دیگران هم با شما شفاف باشن؟ شما یه میزان شفافی با دیگران ولی دوست داریم که دیگران با شما بیشتر شفاف باشن؟ پشت پردتون رو چرا راحت نیستین نشون بدین شما خواهیتون ولی دوست دارین تعمیلگاه خود رو پشت پردش نشون بده رئیس جمهور پشت پردش نشون بده نمیدونم نم، رئیس شورای روسا پشت پردش نشون بده ولی کسی نمیدونه شما در چی کار میکنین کسی نمیدونه که شما یک ماهی از استخری که درش غیر قانونی پرورش ماهی داده شده بود کادو دریافت کردین و اون ماهی رو توی روغن سرخ کردین و خوردین و حالا شما به خودتون اجازه میدین که یه نفر دیگه رو متهم به دزدی و فساد مالی بکنیم منظور شما از فساد مالی چیه منظور شما از یعنی اگه سقراط بود این سوالو رو... این سوالا رو میپرسید اینا ورژن‌های امروزی سوالای سقراط بود منظور شما از شفافیت چیه منظور شما از بافت قدیمی شهر چیه منظور شما از معماری بومی چیه؟ اینا, اینا چیزهایی که واقعا اینا چیزهایی که مثلا منظور شما از چالاکسازی کوچ، کوچک کوچکسازی چیه؟ چالاکسازی کوچک کچکسازی منظور شما از سرزنده کردن مرکز شهر چیه؟ منظور شما از ایجاد حس تعلق به شهر چیه؟ منظور شما از مخالفت با تجاری سازی شهر چیه؟ و بعد و بعد پلانت بی شما برای اینکه که دیگران اجازه ندن که شما این کار رو بکنین چیه؟ اگر کسی به شما بگه که شما خیلی به تلویزیون تماشا کردن علاقه دارین ولی به هر صورت باید یه پلانت بی هم براش تم... برای انترتیمنتتون داشته باشین اگر تلویزیون کار نکنه اگه آنتن رو باد بیاندازه یا به هر دلیلی سیمتون قطع بشه پلانت بیتون برای انترتیمنتون چیه؟ آیا دیویدی دارین؟ اگه دستگاه دیویدی هم خراب بشه مثل دستگاه دیویدی ما که چند روزه کار نمیکنه چیه؟ پلن بیتون برای اینترتین کردن خودتون چیه؟ من بعضی وقتا میشینم به کار کردن ماشین لباسشویی نگاه میکنم و واقعاً الهام بخش و تماشاییه اگر بشینیم و این ماشین لباسشویی که جلو شیشه داره فکر من کنم اکثر ماشین لباسشویی امروز اینجوری باز داخل این شیشه نگاه بکنین تقریبا فرقی با تلویزیون نداره یه موشن پیکچره یه تصاویریه که تغییر میکنه یه مقدارم صدا داره و بعدم اگه بیشتر کنجکاوی به خرج بدین میفهمین که این با چه الگویی لباسای شما رو داره میشوره چقدر میچرخونه با چه سرعتی که آب وارد میکنه اگه ماشین لباسشوییت میذارن پیشرفته‌تر باشه شاید نشون بده که یعنی شفافیت داشته باشه در اطلاعات و روی پنل دیجیتالش به شما نشون بده که الان آب اون تو درجهش چقدر شگنده یا نرم کنده داره وارد مخزن میکنه یه همچین چیزهای فنسی که خیلی جذاب میکنه ماجرارو ولی در این حال اینا رو نداشته باشیم میتونی حس بزنیم که الان آب میاد، الان میچرخه، بعد وای میسته یکم، بعد برعکس میچرخه بعد ایزاره می میچرخه، بعد آهسته تر میچرخه لباس های خوبیتون هم میبینین اون تو خیلی جزا این, این،, این میتونه تلویزیون باشه این میتونه پلن بی برای اینترتینمنت باشه حالا اگر کسی بگه که تماشای ماشین لباسشویی یک پلن بی برای تماشای تلویزیون و خوزعبلاتیه که اون تو پخش میشه و سعی میکنه که چرت و پرت با مردم بفروشه و ذهنشون رو تخریب بکنه اگر کسی همچنی دایه بکنه ذهن جوان ها رو خراب کرده؟ آیا ندارم باید کشت مثل سورات؟ آیا ندارم معذ کننده اریستوکراسیه؟ نمی‌دونم. من واقعا جواب این سؤال رو ندارم یک شعر در پایان این پادکست میخونم و در تا هفته بعد خدافست ناپسندیدن روباه گفتن خر را که من راضیم به پسمت گفت روبه جستن رزق حلال فرض باشد از برای امتصال. عالم اسباب و چیزی بیسبب می نباید پس مهم باشد طلب. و بتوع من فضل الله است امر تا نباید قصب کردن همچون نمر. گفت پیغامبر که بر رزغی فتا در فرو بست و بر در قفلها. جنبش و آمد شد ما وکتصاب، هست مفتاحی بران قفل و حجاب. بی کلید این در گشادن راه نیست. بی طلب نان سنت الله نیست. جواب گفتن خر روباه را. گفت از زعف توکل آن ورنه بتد نان کسی که داد جان. هر که جوید پادشاهی و ظفر کم نیاید لقمه نان ای پسر. دامدت جمله همه اکال رزق. نه پی کسبند، نه حمال رزق جمله ل... را رزاق روزی می دهد. قسمت هر یک به پیشش می نهد. رزق آید پیش هر که سبر جست رنج کوشش ها بی صبری توست جواب گفتن روبه خر را گفت روبه آن توکل نادر است کم کسی در توکل ماهر است گرد نادر گشتن از نادانی است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 نان ز خوکان و سگان نبود دریق، کسب مردم نیست این باران و میق، آنچنان که عاشقی بر رزق زار، هست عاشق رزب هم بر رزق خار، گر تو نشتابی بیاید بر درت، ور تو بشتابی دهد درد سرت،